آنچه را که درباره او به آنان گفته شده بود نقل کردند. همه شنوندگان از آنچه چوپانان میگفتند تعجب میکردن. اما مریم تمام این چیزها را به خاطر میسپور و درباره آنها میقا میندیشید. چوپانان برگشتند و به خاطر آنچه شنیده و دیده بودند خدا را هم و سپاس میگفتند، زیرا آنچه به ایشان گفته شده بود،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 در اورشلیم مردی به نام شمعون زندگی می کرد که درست کار و پارسا بود و در انتظار سعادت اسرائیل به سر برد و روح القدس برو بود. از طرف روح القدس به او الهام رسیده بود که تا مسیح موعود خداوند را نبیند نخواهد مرد. او به هدایت روح به داخل معبد بزرگ آمد و هنگامی که والدین عیسی طف را به داخل آوردند، تا را که طبق شریعت محسوم بود انجام دهند شمعون طف را در آغوش گرفت و خدا را هم کنان گفت حال ای خداوند بر طبق وعده خود بندت را به سلامت مرخص فرما چون چشمانم نجات تو را دیده است نجاتی که تو در حضور همه ملتها آماده ساخته ای نوری که افکار ملل بیگانه را روشن سازد و مایه سربلندی قوم تو اسرائیل گردد. پدر و مادر آن طف از آنچه درباره او گفته شد متحقیر گشتند. شمعون برانان دعای خیر کرد و به مریم مادر ایسا گفت. این کودک برای سقوط و یا سرفرازی بسیاری در اسرائیل تعیین شده است. بایتی است که در رد کردن او افکار پنهانی عده کثیری آشکار خواهد شد و در دل تونیز خنجری فرو خواهد رفت در آنجا هم زنی نبیه به نام حنا زندگی می کرد که دختر فنوئیل از طایفه اشیر بود او زنی بود بسیار سال خورده که بعد از ازدواج مدت 7 سال با شوهرش زندگی کرده و بعد از آن هشتاد و چهار سال بیوه مانده بود. او هرگز از معبد خارج نمیشد بلکه شب و روز با نماز و روز خدا را عبادت میکرد. او در همان موقع جلو آمد و به درگاه خدا شک گذاری نمود و برای همه کسانی که در انتظار نجات اورشلیم بودند درباره آن طفل صحبت کرد. بعد از آن که همه کارهایی را که در شریعت خداوند مقرر از انجام دادن، به شهر خود ناصره جلیل برگشتند و کودک سرشار از حکمت بزرگ و قوی میگشت و لطف خدا با او بود. والدین عیسی همه ساله برای عید فسح به اورشلیم می وقتی او به دوازده سالگی رسید، آنها طبق معمول برای آن عید بانجا با رفتند وقتی ایام عید به پایان رسید و آنان عازم شهر خود شدن، ایسای جوان در اورشلیم ماند ولی والدینش این را نمیدانستند و به گمان اینکه او در بین کاروان است یک روز تمام به سفر خود ادامه دادن، وان وقت در میان دوستان و خیشان خود به جستجوی او پرداختند چون او را پیدا نکردند ناچار به اورشلیم برگشتند تا به دنبال او بگردند بعد از سه روز او را در معبد پیدا کردند در حالی که در میان معلمان نشسته بود و به آنان گوش می‌داد و از ایشان سوال می‌کرد همه شنوندگان از هوش او و از پاسخ‌هایی که می‌داد در حیرت بودند والدین عیسی از دیدن او تجب کردند و مادرش به او گفت، پسرم چرا با ما چنین کردی؟ من و پدرت با نگرانی زیاد دنبال تو گشتیم. او گفت، برای چه دنبال من می گشتید؟ مگر نمیدانستید که من موظف هستم در خانه پدرم باشم. اما آنان نفهمیدند که مقصود او چیست. عیسی با ایشان به بازگش بازگشت و مطیع آنان بود، مادرش همه این چیزها را در دل خود نگاه می‌داشت. ایسا در حکمت و قامت رشد میکرد و مرد پسند خدا و مردم بود.